وقت با هم بیرون نرفت بوده چرا من اونطور تو میسه زن دیگه تو آرامش با هم زندگی برای اینکه تو های ایتموات نداری بد داشته باشم آره یه نفر به خاطر زمین خوردن اینقدر نمیزنن یه ای نفر جورو همه ایستاد به حرفی ایچی کس گوش نکرد رامین من تو با خونه بابای تو زندگی کنیم. چرا ما نمیت خونه داشته باشیم؟ میگن من تو صاحب خونه نبودیم. حالا یه بار یه اتفاقی افتاد. دلیل نمیشه که همیشه همون اتفاق دوباره تکرار بشه. چرا تو نباید پشتم باشی؟ نبودم؟ ما 5 سال با هم زندگی کردیم، دو سالش تو خونه بابای تو این. کی با ای شرایط کنار میاد که من کمن بدم؟ تو برگرد شرکت بابات همه مشکلات ما حل میشه. نه من نمیخوام مدیر فروشی مو باشم من کلی درس خوندم زحمت کشیدم که برای خودم کسی باشم اونجا زیر سایه بابم شرکت بابات کار بابات چه اشکالی داره چه اشکالی داره تو باسته بابات کار کنی اشکالی چینه که من اونجا خوشحال نیستم خوشحال نیستم اون کار من نیست ست تو مانت ندارم بدم بول از خجا بوردی با هم گرفتم اینم یه اشتباه دیگه رامی منو تو چجوری از میمد بعد این همه قصد بدیم من خودم میدم. خودت میدی؟ زندگی جفت مونه خودت میدی؟ رامی تو یک بار دیگه زمین بخوری منو تو اتاق اتاقم نمیتونی ما هم اجاره کنیم اصلا بچه به درک خودمونم نمیتونیم دیگه با هم زندگی کنیم Én valami mondom, hogy gázatok valamit a korszat. Hát tudom, hogy mondta ezért, hogy gázatámos شدی و گفتی؟ سات از وامو به ندا خب؟ میشوی چی میگم؟ چی؟ آرش اصلا حواست نیست دا دارم میگم رامین سات من از پول وامو داده به ندا وگرنه ندا میمد توقیفه انبال میکرد که دیگه پولی برمونه ایمونه چهل پنجاتو من چیکار مخوایم بکنیم؟ منم رفتم دفتر بابام طلاه هایم بگیرم نداد برم نمیدونم شاید باید کار جمع کنیم میفهمی چی میگی؟ به بابام چی میخوای بگی؟ قولت یادت رفته؟ پس باید پول جور کنیم دیگه از کی؟ از هر کی غیر امرتی که رامین ممکنه این کار بکنه خیلی تحت فشار گفتم بهترون ها کامیار نباید وارد این کار شد میفهمی؟ سلام سلام آقا رشدستم بله تو اتاقشون هست آقای جبان مردی قرار دادو آوردی؟ عجی کشتم پیدا نکردم بکنم ان فکر کردیم حرفمون زدیم زدیم ولی به نتیجه نرسیدیم شما یه کاری برام کردی پولش هم گرفتی من دیگه نمیدونم این کارا برات چیه برای اینه که من تو این برنامه سهم دارم سهم بله سهم شما مسته که یادت رفته توی قراردادی قرار... که میگین کجاست شما خودتین نسخه ازش داری من قراردادی ندارم من فایل کاری رو دارم من تمام فایلایی که با هم کار کردیم و اینجا تو لپتاپم هم دارم همه اینا ثابت میکنه که من تو این برنامه سهم دارم خانم شاکری شما خودتون خیلی خوب میدونید که تو این کار فقط دستیار من بودین من نمیفهمم شما دنبال چی هستین؟ دنبال همه اون وعده وعده ای که بنددیم من چه وعده ای به شما دادم چه مزخرف میگی؟ به من گفتی ما همین کار رو انجام میدیم بعدش هم زندگیمونو میسازیم ولی یه او رفتیم چی داری میگی؟ آقای جوان مردی خودتو نزم به او رو چی شما رو فرستاده اینجا ها دست شما درد نکنه حققمو خوردی الان بهم تهمت هم می‌زنی؟ الان میفهمم چرا ولم کردی؟ ولی من از حقم نمیگذرم. من تو این برنامه سهم دارم. اگه سهممو بریم، ندی ازت شکایت می‌کنم. قرار کاری میخوای بکنی بگو. ببینم خام شما تا برای من دردسر درست نکنید دست از سر من بر نمی بابا از کاراش خبر ندارم من مشتریمه حتی ما هم خیلی رفیقین که ماشینتون رو دستش میدادید هر روز با این ماشین شرکت رفیقم من باشه دلیل نمیشه بدونم تو کللش چی میگذره میخواد چیکار بکنه یه شماره ای آدرسی ازش نداریم نه ندارم از دیروزم که پلیس افتاد دووالش تلفن منم جواب نمیده. خب دیدینش که اینا رو براتون تعریف کرده دیگه. خیلی خوب. نشمارش نه نه رو میخوام، نه آدرسشو از موبایل خودتون بهشه زنگ بزنی من باش حرف بزنم. حالا میگم جواب نمیده، تو میگی بهش زنگ بزن؟ شما زنگ بزنید جواب میده. شما کارتو بگو، اگه یه وقت اومد اینجا من دیدمش بهش میگم. نه، نمیشه. من خودم باید باش حرف بزنم. لا, لا, لا, لا. بابا میگم باش تماس ندارم، بفهم. خیلی خوب. من میشینم تو مغازتون تا خودش بیاد میشینی که خودش بیاد تحویل پلیس بدیش اون پشما رو نزده اکبر آقا اکبر آقا اکبر الو امیر بابا این دختر اومده اینجا بس نشسته چه میدونم میگه تا تو رو نبینه نمیره میگه پلیس قبر نکرده از سوانیت فایده نداره باید پولی بهش بدیم که راضی بشی با پول راضی نمیشه سانت میخواد من باش عرف میزنم تونم از میشه کارو بادتر میکنیم از این بادتر اگه بریشه کارت من جلو کارمون میگیرم نباید بذاریم این اتفاق بیفته شما را شوده من با شرف میزنم باشه. فرستاد چرت و برتب منظورم چیزایی که به زندگی اینا میگفت من از حتا نمیدم از کجا پیدا شده و چی میخواد منظورش چی ولی یک کلمه از حرفش حقیقت نداره من هیچ وعد وعیدی بهش نداره میدارم با باید. خب میخوام به ورمتون دوکی باشه چشم. میگم براتون میارم. روششم. خدا آفرید. دستت از سای دستم رو تخت بیمارستان خوابیده می بهتر نشده اون زدش گفت که علایم حیات تو صورتش دیده شده اینشالا زودتر بهتر شد امیدم به خداست. خبر جدیدی نشده. رفتم آگاهی. دنبال اون کارگر است. نهیدنم، نهیدنم. چیکار کردم که؟ انتقام منو از بچم بیرفتن از کجا مطمئنی تو دعوا گفته حسابدار پسرم اونجا شاهد بوده تو منو میبری بیمارستان؟ بله حتما هم چه دیگه نمیتونم ترک مطالت بشینم ماشینه پیشمان آوردن گذاشتن دم در, در. سوئیشم اونجاست روشنش کن گرم بشه با همو ماشین میری میمارستم باشه چشمت منو دادی لو دادی وقت و شده اومدی اینجا برای چیه من لو ندادم داده بودم الان پلیس ها اینجا بودن ماما این کارو کرده بود من بی خبر بودم میدونم دونم باور نمیکنی منم خیلی چیزار باور نمی کنه شدی من پشمانو نزدم چی رو هستم بخونم باور کنی حرفمو پدرش امروز اومده بوش شرکت در مورد تو هزم سوال کرد منم گفتم ازش کی نداشتی دیگه نمیتونی فرار کنی هنم برای چی این رو به من میگی؟ مثلا دلت خیلی میسوزه برای من نگران منی؟ من فقط یه چیز برام مهمه این که من بازی دادی از اولم جو سه نقشک بودم آره اولش نقشه بود یکم که گذشت من واقعا رو شهد نمیخواستم از زیاد شیم داری دروب میگی دروب میگی وجدن هست کنی البته که وجدنی هم داشته باشی برای چی باید دروغ بگم من که دیگه تو را دست دادم شادی من بد موقعا شاید شدم کینو و انتقام چشمم بسته بود نمیتونستم ها پیش ما بعد باید میکسشت. های امیگزر همه اتفاق نمی افتاد. شوزمان. دیر. ایفت دیره. اسم باقیمه امیره قد ارزیه. سلام سلام چه خبر؟ هیچی آقا پشمانش بهتر از آقایی دیگه نخستند؟ نه به زنگ نزده؟ نه دروخ که نمیگی شادی؟ نه نزده بس اینوز پیداشتن کردن نه مامان کجاست؟ است؟ بالا تو اتاقش درس کش ده سرش درد می بله. تو پیدا کردم من کیم. دو پیدا کردن پول بودم. فردا بیا ببر بنامون که شما میخواستی گفتی که سهم میخوای. بله آقای نظری زنگ زد برای فردا با هم جلسه گذاشت احتمالا میخواد با پول رازیت کنه زیر بار نریم حالا اگه حرفشو زدن چیکار کنم؟ چقدر قیمت بده نمیدونم پول واسه من مهم نیست هدف من روناست بابت اون که خیالتون راحت یه حرفایی زدم که حسابی به هم ریخت اصلا یه جوری به حرف زدم که قشنگ رونا اززاز شد از کجا مطمئنید؟ از قیافه شم معلوم بود خوبه ببین تو تا وقتی که بهت میگم باید کشش بدی و هی بری اونجا باش یت میخواام میخوام کردی من کیم که تو چند روز سییتمان جور کنم ها پس باششی برکشید تا اینجا بیشتر از این نمیتونونه تو کردمون نفهمید تو چه درد سری افتادی زدی رو ناکار کردی حس چی زدیش؟ کار من نبود تو نبود که اینجا نبودی به ای من اون بهت گفتن ما حالا حوصله درد سر رو برو بیا نداره حال اح فرض نکن سییتمان رو بر میدارداری کیپتو کیف رو میگیری همینقدر دارم از کیف از آگاهی بگیر. کیف رو بدی و خودت هم به پولت نمیرسی تو رو همین یارو زنده یا رو طرف هم اگه بمیره ادامت بکنن بایستا پولتو بگید کیفتو همون بده دهتو ما رو بقیش جوع میکنی فردم یکیفتو میگیرم این دهتو ما بد بدم دیگه بهت بد پول نمیدم حقا هم چهار دیگه نداشته میشه یه شایدم دادت پولیفتی دست پلیس و حالت سلام بابا جون چه خبر بابا؟ میگن نتیجه اسکن و عکس نشون داده که حالش یه کمی رو به بوده بابا جون خب نگفتن که ای به حوش میام من چه میدونم بابا؟ کسی چه میدونه؟ خدا است بابا من تر کاری میکنم مهران نمیذاره بیام تهران بگن الان پیش پجمان بوده کار خوب میکنه بابا جون تو بابا باید سب بکنی وقتی حال برادرت انشالله خوب شد و بکت هم اجازه مسافرت گرفت و وقت دو تایی با هم دیگه بیامی بدیدنش حالا اون نامردی که این بلور سرش آورده هنوز پیدا نشده؟ نه هنوز بابا باری دنبالشه بابا وقتی حالش خوب شد بهش بگو بره سراغ یه کار بی درده سرتر دیگه نره سراغم ماهی سر و زمین کوفتی مردیم از استرس اول کاری که باید بکنه عروسی با است. بعدم وقتی عروسی کردن دوتاشون رو میفرستن به یه مسافرت طولانی کار دیگه بیکار دلوی بمیرم من برای ستاره چقدر ازید شدیم مدت امروز با جون بهش گفتم که تو دیگه نیا بابا خسته شدیم برو دوباره کارت از کارت افتادی کیف نبودیم دو تا این همه مدت جدا بودن از هم باره دیگه گذشته آ گذشته بابا باید به فکر آینده با. قر... بابا جون یه لحظه گوشی گو اشخی میگام عذرام لطفا رو قط کنید میخوام بچه رو بیارم شیر بچشم همین الان باباجون اصلا میخوام بیارم به شیر بدم برش گردونن تو دستت کاری نداری فعلا خیلی خوشحال شدم باباجون خدا پشت و پناهت تو وظیفه باشه. باش قربونت برم خدا حفظت باشه خدا حافظ آرش چه شده؟ سلام. پشما مرد؟ نه نانا... نه، خدا رو شکر بهترم شده. اوه. قلبا تو ده دهنم. اینجا چیکار می‌کنی اول صبح؟ کم پول داری به من قرض بدی؟ یه مشکلی برام پیش اومده. چیکار کردی آرش؟ اگه داری به من قرض بده، اگه نه از کسی دیگه ای بگیرم. چقدر می‌خوای؟ 20 تومان. باشه بهت میدم ولی تو رو به روح بابات خواستم به او که ربطی و ماجره پیشمان نداره داره کیف هم افتاده بود تو شرکت اون کسی که پیداش کرده کارگره اونجاست رو خود باج بگیره میگه کیف رو تو میده به پلیس آبایی آره من به تو میگم برو بگو که کار من بوده بعد الان مخواه به مردم باج بدی چی برم بگم اه. پدری که من دیدم اصلا به اینراتی کوتاه نمی آقا برای چی ضاابت می این راج بادم که نمی این مدت یه چند بار رفتم خونش کارشو رو برش انجام دادمیه کم می شناسمش تو خونش؟ چیکار می کردم بدم سوختوار میشهبییرمت در ص و پسر شفته برو تخت بیمارستان میدونه اگه به فهم کار تو بوده فکر میکنه از سو استفاده داشته میکرده او برای چی میگم نمیتونم برم بهش بگم. یاروسی تومن میخواد کارو تو مطمئنی که پول به دیکیپو برمیگردونه میگیرم ازش تا حالا ده تومن دادم بیس تومن دیگه میخواد تو پول داری بهش چاری نداشتم آرش جان حق و سکوت دادن کار غلطیه، اون دیگه تو رو ولت نمیکنه بیا برو خودتو معرفی کن که بیس سال بیفتم زندان آقا رضایت میگیریم ازش مگه نمیگی به حوش اومده با پیشمان به خوش بیاد و اوزا میشه دیگه اونم کتا میاد آقا سلام نبابا مزایمت چیه جانم در خدمت هم امارستان شده یا خدا آقا باش که چشم روی چشم ادامیم خدافزم نه نه چیز خاصی نیستش اه, یه داروی برای پیشمان میخوانیم پیره مرد برن خود را در سانسکوف من برم بگیرم برش من نمیتونم پول بهت بدم به خاطر که مسیری که درمیری غلطه آرش چند فکر آدم کمک هم میکنم اتفاقا چون میخوام بهت کمک کنم میکنم. این کارو نمیکنم. 20 بیستومن بهم بده به من این که پول درستان اومد بهت برش میگرد 20 میدونم نیست. بحثه نیکی این کاری که دو دارم کنید ته نداره من شربان سلام سلام چه خبر سینه فردیان کن آشان رو گذاشتم فون ریختن چه خوب آره تو چه کار کردی؟ تو اینو اسپانسر کنی؟ سراغ چند نفر رفتن اما هیچکس اینقدر پول نداره همه زدن تو کار طلا و سکه و دلار اصلا یه وضعی شده. با این دختر افشم صحبت کردم الان هست که پیداش. بنفشم نمیونه. تو این هفته دو ساعتم نیومده. چیزایی با سفارش مشکلی پیش اومده تو محل کارش. چه مشکلیه که کل کارو ول کرده. خان فرخیه این لیست شهرستانیه که پول واریز کردن اصلا بیا چشمنم براتون آماده آمدهش میکنم بنابش الو سلام سلام خانم ما منتظرتونیم کجایین را سیستانی زادم بگم من نمیام. نمیم ما با هم حرف زدیم جلسه گذاشیم من هرچی بگم آنش آشان میکنه پس این جلسه هم فقط وقت طلب کردن. یعنی شما نمیخوایم به نتیجه نتیجهی برسیم به نظر به نتیجه نمی رسیم بقید دادگاه میتونه تونه تکیف من و شما رو معلوم کنه شما از ما شکایت کردیم بله ما دیروز با هم دیگه حرف زدیم همون دیروز شکایت کردم اخو وقتی می که دوستانه حل کرد چرا به دادگاه کشوندونیش؟ با بله رفتاری که من از آرش این مسئله دوستانه حل نمیشه افتا فراموشی گرد چه عرفهی به من زده بوده و چه کاری قرار بود بکنه خانم مدیر عامل این شرکت منم ازتون خواهش میکنم که این شکایتتون رو پس بگیرین آقای نظری من دیگه کاری با شما ندارم تا روز دادگاه به آراشم بگی خیلی معرفت همین تو پلا این چه آراش بیمارفت چیزی بینینو بوده آرش میگه نه اونا این با شکایتش ما رو نابود میکنه قاضی که نمیاد روی ادعا حکم صادر کنه ولی میتونه اینجا رو ببنده که تا وضعیت روشن بشه الان میتونه چی کار کنم این پولم قبول نمیکنه. کنه بعد کنه چه جوری؟ من چه میدونم اگه چیزی به بوده هر شده باید حلش کنه این دختر دلش از این چیزا پره دیگه خانو فروفی بله سلام آقا آقا من جلو بیمارستانم کسی هستش که نسخه رو برم بیاره آقا ممکنه که من راه ندا. نهاره خو دان باید از خلال احمر گرفت. اومزادش هر روز اینجا بود اون این کارو میکرد. امروز روز کار داشت گفتم که بره دنبال انجام کارش. بذیم من میگیرم براش. نمیدونم چه جوری کارات و زرمات تویتون تلافی کنم. نکن آقای نرف وظیفه‌مه. پسرانه و شنیده تو ब्राزیل عزاد برگشت امیدی هر سانس گیر آرش باشو بیه دفتر همه چی ریخته به هم چی شده این دختر رفته شکایت کرد جهنم مگه به حرف اونه به جهنم چیه نمیتونیم همینطوری بشیم دست رو دست بذاریم واسه اون درد سر درست کنه که هیچ غلطی نمیتونه بکنه رامی میگه تا زمانی که حکم دادگاه بیاد میتونم جلوی کارمونو رو بگیرم عادی پولی بندازیم جوروش اصلا پول نمیخواد من نمیفهمم دردش چیه. این اومده واسه اذیت من. چیکارش کردیم اگه هیچی بالا. به غیر از اون دو که واسه من کار کرد، مثلا اینو دیگه ندیدم. یه جوری رفتار میکنه انگار یه چیزی بینت ای بابا، نگامش ماجره بین من و اون نبوده، اون فقط واسه مظلومنمایی این کارو میکنه. نه دفتر؟ نه فعلا که نمیرسن. هرش باش حرف بزن. یه جوری راضیش کن. دادگاهو به موقت بده نابود می‌شیم. من باش حرف بزن. سلام شدی سلام پیشمان چطوره میگم بهتره بهوش اومده نه ببین هر کی جای من بود دعا می‌کرد بمیره واسه اینکه باباشین درد بکشه ولی من آرزو می‌کنم زنده بمونه فقط برای یه چیز سامان آره آره واسه اینکه بگه من نازادمش تو باور کن اگه حرفا تو باور نمی‌کنم که انقلاب درو گفته دیگه هیچ وقت نه که کی راست میگه کی شادی اگه ثابت چه من نازادمش تو منو بغشید کسی مت سوغون کاش مادر بودی چه خودت نمی‌کردی پشیمونم می‌خوام جبران کنم مادام بابا اومدم مادام کار کردی مادام وقتی رفتین همهشو کردیم من تقلا کردم آروم آرون بابا با چی سرت اومدختی پایین بدون اجازه اومد اینجا؟ سر نازم اوچو آو منو بده. افت دهنتو صاف. افت دهنمو نه فهماص چی رافتین دری بری گفتین؟ چی شد آقای طهرانی؟ میگم واس چی رافتین همهشو پر کردین من تغلب کردم. نکردی؟ بدونین <تصفيق> بخاطر این تو اومد بتونم ازت شکایت کنم؟ آقای بهرامی ما چیزی نگفتیم. بی هفت توی طرفت پلیس درمده. واشام دم بده هم پیشیده. من خودم الان اداره بوده. به خاطر اون مزایده سینجینم کردم. این حرف چجوری به اداره رسیده؟ عالم آدم میدانه اون افسری آواره مزایده به تو داده پس اینو با باشم نه اینا واسچی نباشو شده. ده همش حرفه. میخوان اون مزایده رو ببرن زیر سوال، از چنگ من در بیارن. من تو امروز میخواستم با همهتون کنار بیام. حتی به پدر پژمانم گفتم میتونه تو اون ماهی سرا بمونه. ولی بهش بگی سه هفته وقت داره اونجا رو کنه. آقای بهرامی، همه دارو نداره ندار آقای هم ماهی سراست. اجازه بدین خوب بشه بعد. من با هیچ کیش کی توافقی ندارم. سه افته دیگه رسمند اون زمین میخوره به نام من تا اون موقعا باید تخریه شده باشه تمام خدا فیز بری اگه این سامانه نامردو بگیرن همه چی رو میشه معلوم از ترسش رفت تو کنشترا خواهیم شده آرش وقت خیلی به هم ریخته است. ممکنه همسر سبکش شما برش درده سری درست روز گرفت. خیلی شما از کی خیالتونه تو برای چی قطع به هم ریخته؟ ای که رونا نگیر. اگه فکر میکنی با سعی ما گذاری میتونی بر رونا نزدیکیشی داشته تو. کی نگیر رونا حسین. باقی. هرست کن. هرست کن. اگه من براش میتونستم. کنم که من رسما شکایت کردم. آقا من کاتی چه خبر؟ جمع تو آمریکا. باد فرار تو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 ما از را رسید روی رب علن شص دکمه های قلب من دون دون شبل شدم گفتم این یه معجزه است خیر شد به آسمان همه چه ستوره ها دون دون گل شدن مهربونی ایش نازنینی ای ایش آخریم تکه یین جورچینی ایش مهربونی ایش نازنینی ای ایش آخریم تکه یین جورچینی ایش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 من چه میدونستم اومد زود بره چه قروبی داشتن خنده های آخرش آقای خدافزی یه از قلبم مثل پروان نشست روی سنجاق سرش مهربونی ایاش نازنینی ایاش آخرین تیکه ایین جورچینی ایاش